به دور لاله قدهگیر و بیریامی باش به بوی گل نفسی همدم سبا می باش که همه ساله می پرستی کن سه ماه می خور و نه ماه پارسامی باش چو پیر ساله که اشقد به می حواله کند به نوش و منتظر رحمت خدا می باش گرد حواست که چون جم به سر غیب رسی بیا و همدم جام جهان نما می باش چونچه گرچه فرو است کار جهان تو همچو باد بحاری گره گشها می باش وفا مجویز کست ورسخن سخن شنوی به حرز طالب سی مرگ و کیمیا می باش مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسا می باش.